الحمد من الشيطان الرجيم الحمد لله وعند العالم الله عليه وسلم فعله قد يوم فعله قد يوم والله على عزائهم أسمعين اللهم خير يا أحمد أرسل مسألة نو چهارم از نکاسه محترم درباره رشته بود و مرحوم شیخ بعضی از عبارات لغوی ها و بعضی از عبارات قواعد خود اون رو در این جهت نازل کرد در بعد شیخ حلیجه راه بحث اخذ حجرت بر فضا شد به خاطر اینکه بعضی از عبارات اصالمی ما بود که بل اجرت برقضا هم رشوه مورد از اجرت برقضا اگر شخص مولداری فقیلی جامعه شرائق دو نفر پیشش بیرن برای خصومت بگی من رفع خصومت ببین بگیرسن پول نه اینکه به نفع یکی حکم بکنم پول رو بگیره نه بگی من پول میگرم متصدیه قضایت این به اصطلاحا اسمش بروسین اجرت برقضا مرموم و شیخ و این مناسبت متعرضیم شدن چون در, در, در بعضی از که، همین احضی اجرت همه بشه هست دیگه ایشون از برقضی شو و تحریح بشه و شده بشه یه دفعه و رفتن توی وقت اجرت برقضا هست شد دیروز نیدون مطلب واضح شد وقت اجرت برقضا از سه ذاویه قابل نهست یک اینکه آیا اجرت اصلا اصلا عنوان عنوانه اجرت برقضا محرم این چون توی یک داره که صحب انواع کسی کسیره منها اج یک بحث اینه که آیا این باشه بحث دوم ایشون آیا این اجر بر تضاوض رشوه است معنا این بحثی که به معنا داره شو رو حرمتش نه به لحاظ رشوه بدنه حرمتش به لحاظ به اصطلاح اینکه قضاوت با مجانی باشه قاضی هر نداره پول بگیره بحث در واجبات حرام هست. پس این سه میشین می‌شیم. دوم عنوان اولی که در نمیاد دوما. این نه. نه. من صحب میگه علتش همینشون شما مجانی باشه من ناصف. نه، اصل، نه اصلا اجرت. اخذ اجرت حرام است. بخدا ممکن است در عنوان اول بگیم برای دهنده اشکال نداره، برای گیرنده قاضی اشکال داره. اما اگر قابل شدیم به این که نه مثلا رشوه است. اگر رشوه باشه برای هر دو اشکال داره. هم برای دهنده اشکال داره، هم برای, برای قاضی اما اگر از روانی سه گم گفتید از روزت بر واجبات فقط برای قاضی اشکال داره برای لنده ها اشکال نداره هر سرق بین این سه بند روشن میشه یه دفعه خودش عنوان عجل و قضا گرفتن پول برای قضاوت حرام و در اینجا هم باز یک خره ای داره آیا در مراد از عجل شامل رزق از بیت المال هم میشه یا نه اگر دنبال عجر رفتیم بیتون رز قرارو نمیگیره چون شهریه از ماهانه از بیتون ما میگیره عجر اصطلاحا یعنی این یعنی قاضی بیاد طولی بگیره به اینجا رفت بکنه اما رزق برای منصره نه برای حکم کردن قضا بر کردن ممکن در تیه یک ماه یک بار هم مثلا حکم نکنه در خدا تاریخ از عمر نقل شده که وقتی که بنا شد که ابو خلیفه باش بنا شد بحث قضاوت در اختیار عمر روی اما امان رو گاغم مالی میگذر شخص دو نفر پیش من دو تا قضاوت پیشه تسینی میگوندن پس بنابراین این که شد ولی زا آماده هم تر بودشتن. اگر منصب بود رزق میگن اگر حالت شخصی بود اجرت میگن البته در اجرت لازم نیست حتما از دو طرف مخاسه بشه. ممکنه حتی اجرت از طرف سلطان هم تفصیل بشه. اینطور نیست که رز حتما از طرف سلطان باز باشه و اجرت از طرفه مثلا سلطان یک آقایی است که جامعه شرایط میگه ما پرونده‌های مهمه که شما میرسین هر پرونده‌ای به ازای 1500000 تومان بهتون میدیم اونم که درش شما یک پرونده بفرستید اصطلاح اجرت یعنی این اصطلاح اجرت یعنی پول بگیره به ازای قضیه معین این نوع اجرت میشه اگر پول بگیره به عنوان تصدی رسید مرحوم به این مناسبت وارد این بحث کدن و این بحث مرحوم شد که سه ذاویه داره یکی اجر قاضی حرامه یکی این که اصلا این اجر قاضی رشت رشت, رشت رشت شاملی این هم میشه به این مناسبت که رشت شاملی میشه از بعض از عبارات لغوی ها استعانه کرد لغوی های احرس و نه، شیعه مثل مجموع مثلا در قانون خصوص جول من توضیح هست است کردم اگر شخصی سیر درست باشه جور شامل قزاوت و غیر قزاوت پول بدیم به یک نفری که مثلا در دکانش زود باز بکنه جریمه ظاهرا اینه دیگه هر پولی که شما بدین که طرف کاری انجام بده این از جریمه است اخذش قزاوت هم نذاره می یک شخصی پول بدین از جریمه فرند بشه به یک شخصی پول بدین مثلا به این که همونجوری که مثال زدم مثلا در دکانش زود ببنده یک ماشین اومده اینجا پارک کرده من یه من حق پارک شدم یه پول بدهیدین که اینجا پوشه بده اینا کلا زایره امارات قاموسیه باعث اصلاح ها پولی که انسان میده برای اینکه به حاجت خودش برسه هر حادثه‌ای باشه نشه و یه روز یه تذکیه افسری اول بعد از این ان شاءالله متصدی اقدام ما فعلا در حد عبارات شیخ از ده درجه رشوه یه رفتن تو مسئله اخذ اجاز برای قاضی و این مسئله شد این مسئله دیگه و اون این که یک ارتزاق قاضی از بیتلمان دو اجرت قاضی اجرت قاضی هم شیخ نیارده اما انصافش اعمه چه طرفین این قاضی پول بینن چه بیتلمان بده اون اجرت. عجرت مختر به قین رز و اجرت این اگه در مقابل قضاوت معیم پول معین بگیرم چه اجرت؟ اگر برای تصدیل منصب بگیرم شه البته شیخ در باب ریز کار میکنه جایزه و هم هست چون امّا علی مصطفی این مطلب در واقع ابوجهیپ چیم انکار نشده حتی نقل شده که امّا اگه شو سونیا کردند که که پیرامبر امیر مومینی رو برای از از وقتی پیرامبر است حتی اگه ماهانه قرار داده که روشن نیست از بعضی از متون اهل سنت آن دیگر مصطفی نظر پیرامبرش مصطفی پیرامبر که شاید بعض منع شریف آمده در بعض از موشون کنند و مسلم تو خود نفت بر آقام از ترمیر در اهلانوشون ماده کشتر اصلا نمیشتن برای بله قاضی اون مقدار رزق قرار بوده که نیاز مردم نداشته باشه رشو از مردم نگیره و سیره عملی فقیه برای این بوده یعنی گرد بحثش نسته لذا مسئله رزق رو شیف محبوبان اند میگیره اشکالش سر عجر قاضی یک صدق رشه بر عجر اگه اینو اشتباهی سر می‌کنی انصاف قضیه که در ما نمی کنه. شده درما صد نمی‌کنه خلاص حالا شاء الله تغییرش بده ایشان با تفسیر لغوی ها که گفتن مجموع کردم مجمع برهنشه ابطال هر او تمشهی باطل این دیگه صد نمیکنه. اما اونایی که گفتن جول دفع اعمال برای اصول مصانعه برای اینکه انسان با فیسی بزازه پولی بده برای با حاجات خودش برسد هر این تفسیرها صدق می‌کنه نه شیخ مناسبت روایتی و روانا صحیح عبدالله نستنان آوردن که قاضی که بسا پول از سلطان میگه, میگه، رز میگه داره که سخت ما به این مناسبت دیروز رواست خوندی کسی توضیحش بر حالا چون شیخ وارد این بحثم شده ما این بحث رو فعلا یک کمی بازتر صحبت میکنیم یک مقداری روشنیتر بشه مطلب عبدالله هست خوصیح بله عبدالله هست محمد راجب یه روایت امال یوسف ابن جابر رو دیرود آقایی که خوند یه جورد یه سند رو خونه میاره یا من اشتباهش میدم یا آقا اشتباه خوند هم میدم چطور شد یکی از این دو سرگیر شکاری پیش آن روایت یوسف ابن جابر رو که دیرود خوندیم اینجا از خود کتاب وسادل کتاب روایت یوسف ابن جابر رو در کتاب وسائل در ابواب صفات الخازن به سلام ایشان ورغم هنوز چيابند صحيح شده نه قبولش مشكله ظاهره اول حبوری این, این که این رشته است چرا مردم کنن که اگر مردم جمع بشن حالت رزق پیدا مگر این از واقع ولایت عدود مؤمنین از واقع ولایت این کارو کنن میشه به نه به ماه مردم از واقع ولایت عدود مؤمنین چون یکیه مرتبه از ولایت چون در خود قرآن هم داره المؤمنون و المؤمنات بعضه همه اوگیاه و بعض یه مرتبه از براییت مال عموم مؤمنه یه مرتبه مال مثلا خدماست یه مرتبه مال احمد یه مرتبه مال رسول الله مال خداست اون مرتبهی که بر میگرده به مردم اون اشکال نداره اون. اگر اونا قرار بدن در, در, در, در کتاب این چاپی که الان دستانه هست همون چاپ مرحوم آقای ربانی است به جده 18 این چاپ میشه در این چاپ جده جلد 28 میشه در اقلاق استفاد و قاضی به جده 28 باب بابی باب این چاپ صفحه یکی صفحه 102 است اما باب 11 حالتی این دیگه ایست دیگه در اینجا بوده. حدیث شماره دراز به در کتاب مکاسب شیخ ویدونی حدیث موسیقه الخبر نمشه این حدیث اشتباه کرده شیخ اون شده ظاهرن چون اون مقداری که در کتاب مکاسب آنوزه تماما تمام خبراری تکمه نداره. حدیث شماره یک قبل شمار 11 از این چه از یازده آن آخرش داره علی حدیث شاد شیخ با این اشتباه گرد. این شما با دوازده هست. برد این که در مقاسب آنگه ترخبر یعنی ترخبرتات مداره الان نداریم که درخی داره موز نداریم. این از به کتاب‌های های درجه دوغتی مرحوم و صدوق کتاب معامل اخبار بیشونه ای که از مشایخی داره به نام احمد ابن محمد ابن حیثم که به یک مناسبتی هم نجاشی بر در حسن ابن احمد توصیف کرده فعلا ایشون از مشایخ بله مشایخ شیخ صدوق از تسلم او سرهن احمد بن یحیی بن احمد بن یحیی اگر درست باشه مستندات خوش داشته باشه فعلا نمی‌شناسمی احمد بن یحیی تو این طبقه کی؟ بعد بحره از احمد بن یحیی بن زکری یا القطان اسم کاملش اینه این نمیشه. احتمال داره قطعا هم پندو پروش این اسمان به سونی ها شاید بخوره از مشهور تحرسون نزدیم اما بکر ابن ابن این نجسی ارهادش نجسی و, و, و درغهی بوده احتمال بسیار قوی داره شیخ این حدیث رو به هر این خرار و اصحاق میگه شنیده یعنی چون بکر عبدالله بوده عبدالله احرقهی بود هم طهیم ابن بهلول ان عبی این دو هم نمی‌شناسین. امام محمد ابن سمان این خوب معروف. هم. این به رجالی هم کتاب کردن دو تا مشهور داره شواهد داره که حتی نمی‌کنه به رسول محمد ابن سمان که خاص ایشون. نمی‌شناسم اسمش نه اینم درو از اینجا مشهور ا کمیین باحق بود از اسم شه در ک رجاوی ما اسمشه و پدرش این بهات رجایی که ما چرا از کردیم س این اشکال داره وکه ماش یه راهی دیگن به نام چهرسسی داریم به نام نسخه شناسی به ذهن ما اینطور میاد این کتاب این به باید یاد کتاب بوده از میراث های محمد صناه میراه علمی ایشان دیگهون رخت مناسب اون چند جلسه مهممان که محمثلان صحبت دادیم محمد ابن سرم جزوه ایکی از کسانیست که انصافا میراس های علمی خط غلوب رو در ما زیاد نقل کرده میراس خط ارتدار هم نقل کرده اینطور نیست مثلا اینجا همزاد ابن هم را این از, از خط ارتدار در خط غلوب نیست و میراس هاییشان کوفیه اساسا میراس هاییشان در کوفه بوده بعدها دیگه به طرق مختلفی به شهرهی چون صدوق الان در اینجا خودش اهل قومه راهی سومی هم احرقه یه احتمالا یه نسخه از کتار محمد بن سنان که مجهوله خیلی واضح نیست یه نسخه که به دست مرحوم صدوق رسیده اینشالله من در خلال مباحث شد همین روزم بباید دیگه می کنیم همین آثار محمد بن سنان به نسخه خوبی به قوم رسیده قبضه برگرمه تحریق قبضی و تاروخیش و شاید این که من هم نجاشی هم میگه و دمکر یاره و کرد همین نظرش نظر شده این یاره و من معنا کردم مراد اصطلاح یاره و یعنی این جناب بکر بن فکر نه عبدالله گاهی مطالبی رو نحول میکنه از که در نسخه مشهور هم هست یعنی گاهی مطالبی نحول میکنه که در نسخه بیگه نیست یام اول خو این که یارم محو مون مو معارض باشه. مراد نسخه شناسی این کلمات نجاشی بحث رجالی نیست بحث فهرستیه. ماهور که یارم محو معروسو این همین مثلا به روایت نمیونه که ممکنه چیز دیگه مثلا روایتی که شاذ ذکر کردن روایت معروض خب هر چیزی این مشکلی داره. اینشون اینشون یاره بایان کرده چون گلی چون یعنی ما هم منروحونه یعنی من. این عبارت رجایی نیست عبارت فهرستیه و این تعنه نه این که تعنیه تعنه این اشاره است تو این که نسخی رو کیشون نقل کرده گاهی این وقت نسخه دیگه هم هست کتاب دیگه که از محمد ابن سلام داری رواخیشان هست گاهی اوقات فقط تو نسخه ایشانه نسخه دیگه محمد ازان ن اینورا علی شاهه اینجا هم اینطوره مثلا این روایت رو ببین هم نغرو نکرده مردم کلینی نغرو نکرده گویا این روایت مستقر به علمیه مثلا در باب کلینی در ابواب علم یک بابی داره باب میذاره باب المستقل به علمه مثلا باب میذاره اینو که می صدور در اینجا میاد نقل میکنه این تنهایی از اینو هم در کتاب مشهورش نغرو نکرده کتاب ما اخبار که در این جزبه احادیسیست که ایشان نه اینکه ایشان حدیث منکر رو نرکرده متن از های محمد بن ها. اصلا این نحوه تصور شما در رجال ما تور ما کم داریم بیشتر ما مناورد بحثای بیشترش بحثای فهرسیه به اصطدا بنده پس در حقیقت تاریخ این حدیث هم روشن شد خیلی معلوم شد از های محمد بن سلمان که در کوفه بوده، به برای آمده، ادرايه هم به قوم آمده. این ام تاریخ. نه، خود محمد بن سلمان است. گر اصلا ما را تأثیر دادیم. نه. گر می‌ماده سیم‌نام اصلا. خود محمد بن سلمان اشکال, اشکال داره. اشکال محمد بن سلمان، بچه‌هایی به سالن نیست شدن، چه زمانی که دیگه بگیره. مشکل محمد بن سلمان که نظر ما همونه که خودش نهایت می‌کنه. میگه امکان دادن وحش کشته. من درست این احادیس نارفه، اینو وجاده بوده از بازار خریدم. مثلا کتاب حمزه نهمران رو از بازار تا من از نسو. کتاب حمزه نهمران، شما کتاب کافی میخریم می‌گید نمی‌خریم. کتاب حمزه نهامران رو از بازار خریدم. مشکل نیست. شما می‌گید ما اسکاپی نمی‌خریم. چه کار می‌کنه؟ چه اشتباهی دادم مهندس؟ مشکل سر یک کلمه هست. اون این است که وقتی شما از کتاب کافی نمی‌خرید، می‌گه عین کلی یا مین جا به کافی و ف کافی به, به اسم <تصفيق> اشکال این بود وقتی شما به نهره به جاده نران کنیم تعبیر هم این اشکال هم خب دقیق نسمی اول ما کنیم تشریعیه این اشکال هم مبنایی ادهی از اهرسانت مبناشون این بوده که به جاده هم همه تغییر این اینجور نیست که استاندارد تسمیه مثلا مثل به اجتماع نغیزن باشه بگیم این آگاهی مثلا کفر نیست نه این مبنا بوده شاید حالا من الان دقیقا نمیتونم بگم شاید من در مجموعه احوالش بحث درمی‌شی اما اینطور مفصل اما ما سومیا خیلی مفصل داره بحثه آیا انانه مساوی است با اتصال یا نه اصلاشون این انانه است با اتصال یا هم معذ اتصاله این دیشو گفته هر معذ ولیزا چون ادهه از بزرگان اون نخونگم بزرگان بزرگان دریجه که اهل سنن اینا داری اوقات حدیث و ماهنم نرمی کنن با اینکه که اتصال توش نبود اینا روشون هم در تدیثیش اهل اینه از اینه شهنشون میگه، از درو عیمهی در شهنه اما مدلس هست من چند با توزیدن تدیثشون این بود مثلا میگم. آخوی خود از خدایان خویشی رو نه نه من از روان اوش سرانجام کاملا صحیح نه که سندش ایشون مدرس اینی که واسطه رو نگردن کردن میخوان تدریس تدریس یه ایده از امام شیعه اشتاق که مثلا فلان آقا ثانی از علمای بزرگ ایران میشن ان محترم اونم این کار رو با نیست قرار نه اونا فقط این طور نگوزه مثلا چون مدنسه دروه نگفته چون مدنسه اگر در روابط دیگه تغییر و انعنکر و انفلان شبهه تدریس هست اما اقام سمیر سوزه زوحی مثلا یه بود دیگه شبهه تدریس هست مرسلات منو شهر سلوحنه تدریس نیشه تدریس نیشه من مرسل مرسل را میدونم اون محصر بعد این واسطه کرده این محصر یکقدر بلکه بعد به لحاظه مشیخه محصر اد میشه از اون مواردی که در مشیخ ما من میتونیم ما نظر ما اون پترات بالان که دیگه اگر میخواسته از اصلی ما خودمون نفتیم بله خود همینطور صدیت حدیثه از که در میان کتاب اهل سنت راهی شده سه واسطه به هر ست کرده این قصر نمیتون یکی از روضه حدیثی که مثلا از یه اوای نرفتن. پیش از اون گفت نه من از قرانی چیم." اونم آقا تصا نمیشه مدینش اینه اون تصا اون که این اسمو بس رفت، بحثه. گفت: "آقا من هستم یک حدیثی که گفت بله. خود گفت: "نه من از قرانی." کوفه بود. بود من کوفه. اون آقا گفته از گفت: "بله من گفتم." خودش گفت: "نه من از اون آقا در شام بود. اون آقا شام بله من از درست بودن نسبت راست اما سه واسطه هست که اون سه واسطه یه وقت شعر پیدا بوده ما به اون مج مشاكل سفر سفر بکنه تو این واسطا رو پیدا بود این تدلیس از میگم میام تدلیس ایشون ها موذر هست اگر اعانه نل بکنند به املاک و رز در خود بخار مشی داره مثلا حال شعر تو بود در شهر بغداد نمیشن زیاد نمر سر هدف سما رو از اون این تدلیسی میشن از جناوه محمد ابن سنان کردن همه به نحوی از که در مجموعه روایاتی که احوازی که علمای اهل سنت زیادم قول دارن یعنی خیلیشون که آیا انعنه مساویق است با اتصال مساویس با اتصال یا مساوی نیست درصدشون میگن مساوی با اتصال 5 درصد در مخالفن تقریبا 10 اما در میان اذهاما داریم مشکل هست محمد این باید می توضیح ما ها, ها این مشکل این. اشکال سهل مزیاد همه مقصد داره اولین با توضیح تونه خیلی بین از خمکنه ایسا منو پر کشون کذا هر خبتا کذا اشکال سهل زیاد هم, هم. اشکال سهل مزیاد هم همینه این که انسان مبانی حدیثیش رو برغت بکنید همین که درمی مبانی حدیثیش روی یه این رو نگه شده سبتون کان زعیفن فرحدیس به رضا اقوان از دوزان یعنی زعیفن فرحدیس تضعیف نیست راسته این تضعیف نیست اگه گفت کان اما اگه گفت کان زعیفن فرحدیس این تضعیف نیست درست این به این دو نیست و فرمان بود که از دران تضعیف خ از ما تفاولی به نیدونیست که حالا چرا دیگه؟ بعدشم اینا معتقد بودن که این کس برسن تو چرا میگه ان؟ من یه توضیحاتی رو ساده چون کسی بحث خارج میشونی این بحث خارج از کلمه انو الامو در فارسی از معنا میکنیم منم از هر من. اما در کتب حدیث نگفتن علی ابن الراهیم من عبیه نه اصلا گفتن از عبیه اصلا سر شما اگه یاد تو روش تو جامعه مقدمه تو هدای رو به اندل مجاوزه اصلا چون اندل مجاوزه است ان اردن این که لذا ان انه مساعده با افتصال اون نقطه فرمیش اینه چون ان در سلوی دوتا هرم برای مجاوزه نمید که مجاوزه یعنی این کلام حدیشان ساده شد تجاوز دردنید نگوستن من عدی ما در فارسی بین من و در ترجمه فرمونت باشیم خیال میکنیم که میگن انه من عبیل بعده اگر من عبیل بود ام روشن از... شد چرا گفتن انه عبیل که ام نما این از او صادیه شده و لذا رو مسابقه با اتصاد نقطه روشن شد اینه که انه عبیل مسابقه با اتصاده چون ان در لغت عربی به معنای مجاورده. است مجاوزه یعنی یک معنای نصری در نظر گرفتن. یک چیزی رو در نظر گرفتن یک مفهوم دیگری که از این جدا شود مثلا میخواست صحنه رو هست مثلا میگه نام غدا در, در صورتیه راستی میگه انا علی یعنی این کلام که اول از پدر او صادر شده صادر شده مندرسی. به فرمانده به معارفه این مجاهده این نکته ای که ان رو به جای مهر و نکته ای که در کتب حدیثی شما گفتن آها انا شما ممکن است از پدرش از پدرش ممکن نشیده باشه که چیز باش واسه کرده این مشکلش چی شد این ترجمه عین اند عیض فارسی این ارزشو ترجمه منم هم هم. این دو تا رو باید دیگه حل کردم چون شما ممکن بودینه چرا ان ان مسابقه باعث شده ان ان احمد مسابقه از پدرش ممکن از پدرش مشادش نشیده باشه مال پدرش بود از یعنی منشأ کلام از پدرش نه ان که اومدن برای همین مسابقه بگن این کلام، این قول از خدر اون تجاوز کردن چیگه؟ یعنی از خدر او, او سادر شده؟ بسن شو؟ نه خلد... شده؟ نه کار به قفیهاش نداریم این امانه که اگر تحضیل دهم کرد یعنی منشی ندارم از اون شدیده اتصاله نه به قدر من رسیده اون نه این کلام از خدرش تجاوز کرد یعنی فرض کرده مثل تیری که از کمان صادر میشه خارج میشه این فرض نکرده تیر رسید فرض کرده کمان رو هم فرض کرده لذا در عنانه یک تجاوب در اند یک تجاوبی لحاظ شده اون تجاوبو در لحاظ اینکه این حدیث و کلامه یعنی کلام از اون صادر شده یعنی اون گفته نه اینکه از او به من رسیده نه اینکه منشه کلام اونه ممکنه منشه ای کلام باشم او در من نرسیده در قطع میکنه من از اون نیدم نظام من نیگوهدن و سر این که روشن شده ترگوید نداشم قیدم دفیفه یعنی انصافا معلوم میشه این علما خیلی زحمت کشیدن خیلی ذکتها و ذراها کار. اشکالی به محمد بن نسان آن اینه تو که از کتاب حمزت نهان نقل کردی خب بگو پی کتاب نمیگی نه میگی نبا ان حمز وقتی شما گفتی ان وقتی لزام بزرگان حدیث که بودن موسن آقای درو, بفت. درو, بفت. <تصفح> <شما بس. تصفح> درو گفت دروغ یعنی درو گفته ان به کار برده باید گفتی که با ان در استداره برای اتسال برای به اصطلاح مصادره با اتسال و حدیث مصادرمون همونجوریه که اون واسطه خیلی جنب باش شما هستش میکنیم. هست اما میگیم. من من خودش خب می‌گیم. ما میشه تذکیر نه آقا مدرس. اشکال نداره ما میگم اتمو میذنگیم. که خاطر چی شد پس این حدیث الان برای شما تاریخچه این انشاءالله رو چه نمی‌شه بود نسخه از کتاب محمد بن اسلام میراث محمد بن اسلام به قم رفته چه اگه داخل موارد نجاشی ندوشه اون یوم کرام یوم اون تجسی. داستان ذهب این محنا ولی ذهب صدق... البته کار صدق هم خوبه صدقا ما هم باشیم هم کار صدق... خب صدق آورده برده من هدفم اهم مردین که مقترب باشه اشکال صدق نمیشه کن میراس های علمی اصلا جمع کرده این روایت این طوره که همزه ابن همران با خالصم این همزه ابن همران این همزه تر زراره از همزه ابن همران نهگم من استع کل در علمی افتقر قل تو این فیشیعته که قومن تحملون و قلومکن و یا بشونها فیشیعته کن فلا یعدمون بسیقه موجود، فلا یعدمون من هم الدره در محرود دوبارم شد فلا یعدمون محرود عبرش همون آفراز شد الدره سلطه ولی اکرام فقاله علیه السلام لیسه اولاره که به مستقلین انما راک یا اینم المستقل و به علمه علم یفتی به غیر علم هم انصافا به علم و مستقلی مستقلی از مثلا فقه و اصولی از گرسه تراب پول از مرزم میکنم اما اینم آزار کلدی به غیر علم میخوره به خط برورم میخور توجیه دید. هر کسی که آشنا به درجه علمی هسته مستقبی پسر بشه. رساله به در مستقبی مدید. این مستقب به این علمه. غیر علم ولا من الله لیوبتل بهل حقوق تمعن في حتام دنیا. البته این لیوبتل آزا مرموشه لی توضیح دادن که یا لاما لامع غایت اونه که علت غایی باشه آقابت اونیست که کار برش مختلطه و هدف نباشه چون هر دو معنا در لغت عرب بعد از لام آمده مثلا میگه دول موت نه اینکه موت غایت باشه اما آقابته یعنی انسانی که به دنیا ما باز موت رسی و به خلاف لامه مثلا طلب تور دل... مثلا ل... نا... کمال مثلا اینجا دام داره. غایت البته این این نماز ها که لبی به غیر علم و لا حدن من الله لیوب به بهل حقوق تمناتی حتام دنیا این در مناسبه قضاوت آوردن مناسبه این که افتای در مقام قضاوت بگره لیکن این دواز به قضاوت نمیخوره اصلا مستوید یه مجریت باشه ولی که چهار نفر پوی جهن وقتی به قضاوت هم نداره تعجیم هست مرمون مجزه مرمون سال سال تو باب قضاوت مرحوم شیخ هم به همین مناسب اینجا آورده بودن. سلطان نمی شه میشه کش. هیچ قضا که نیست. یوقتی بله اون یوقتی ظاهریه که اثر پس واسه نه یعنی مقا برابر خصوص این بدیه. این مؤسسه دی مرجعیه شو. هر بده به که اهل چه مشتری چه مشکه در این در ما که ظاهر که توش نیست. نیستید غذابت بابا رفع خسومت اجت... ممکنه بگیم یک لحظی چیز تا معنا بگیرم اما این حضور ظهور درست نیم نه نه نه ما و مازیده بار زور نبینیم اگر زور فرزور, باش. <تص uno> فرزور باش. <تص> <inhale> ای باشه, باشه؟ مسترم مسترم این فرزور مستن. باشه تصریف میشیم اما نه اون دلالت ساخت این چه قاضی باشه چه نماشی؟ به نهر سنت شده اما بین ما نهر باز فرمیه باشه مگر اینکه چه در یه ضروریت نهره به نظر که آیه دلالت مبارکه هیس بر مرخواه و قضاوت در زروری دلالتی نهره اون وقت روایت عبد الله بن تنانم خوندیم که مرحوم صاحب سال وسائل آوردون در دربارو اجرت اما تو چه راجعه بود رسلم سلطان بود حالا چون روایت اون دی اون تظهار هم شده به منوصی که هم گفتم اون روایت بعد بررسی می‌کنه فعلا حضور ذهنی ندارم دیدیم بهتره این همین واق درسی بشه همون روایت هم روایت دیگری که در اون وامه در کتاب وسائل بعد از ابواب فضا همین جلد 18 که استردم ابوابی داره به نام ابواب آداب در باب هشت ابواب آداب ایشان عنوان باب قرار داده شده که شیخ انصاری محترمی مقدارش اینجا به من گره تحریم رشوه در یکی خوب که رسم از سلطان علا قضا این اشکال اینه یعنی شو معلوم میشه رزقه از سلطان هم حرام بوده در رو بازار عنوان باب و سایه در حقیقت از انسان رزقه گرفته اجرت رو ننبشته سا و سایه یکی رشوه گرفته یکی رزقه اون از سلطان وکه در عباسه شیخ هم کنیش یکی ارتضاق اشکال من بوده اجرت گیر داره یکی این که خود قدرت به عنوان از سفت در مباد عمار بن مروان یکی هم که احتمالاً صدغه رشوه بکنه اما از عبارت صاحب و سوال معلوم میشه که رزق خیلی از رشوه و ظاهرا همین درست باشه پس یک بحث لغوی ازش استفاده میشه که رشوه پول دادن برای اینکه کار قضاوت بکنه نیست رشوه اونه که انسان پول بده برای اینکه نه این عنوان باب وسایل عنوان باب باب و تحلیم رشوت و رز از سلطان عرب پتا شاید شیخ همسالی هم که اولین اون خود صاحب و سال از کجا گرفته و کاشی هم صاحب و سال دقیق می پرندم این اولین کسی که عنوان داده مرحوم شیخ کلینیه من در خلال بحثات دیگه که مده ها تشکیبی یکی از مشکلات اینه که مرحوم شیخ کلینی خودش بسیار تاریخ‌گزار و معدد حدیث و حدیث‌شناس و اوثق و ناسل حدیث و ای این اباس نگارش می‌ریشن نه وجهت است بگم این اباس ایشون و ناسل حدیث اساسی اضافه بر تمام این‌ها فقیه بزرگواری هست ایشون در حدود 330 یعنی حدود 70 سال وفاتش پیش از 70 سال بعدش بخاری خود بخاری در جامعه داره اناوین عبواب داره. خود اناوین عبواب بخاری اصلا دست داره شکلی زرائف و داره من چیزی هیچیز مثل مرمون ابداع کرده باشه تازه. خود کلینی هم اناوین عبوابش خیلی داره و متاسفانه مجموعی حدیثی ما که مثل متاخیری مثل فیض کاشانی در واقعی مثل, مثل مرمون ها این مجامی حدیثی متاخیری از کافی نماری آنابینه اول هم نمی‌گردد متأسفانه. بعد از این دو تا یک فاصله که از دست ایشوده، معلومه معلومه بانی و تاریخ اخیر که ماست سراغ رویش کرده، متاسفانه اینها هم در هاشیه آنابینه اول نیستند. چی می‌دونم که من میگم که بدونیت از نخس‌های کارهای ما این است. چه کمک می‌کنم آن‌ها رو؟ خب این نقص است. ما سعی در کافی اینطوره باب به اخذ لوجر و رش ارائه کنیم. کیلا تیفه. <تصاف> <تصاف> در روایت بودیم در روایت در رشاد بکنیم نه رشاد نه رشاد نه رشاد نه, نه نه عراسی های محتشی نه خب در قطعه کنیم فرقه اینه چقدر کافی لکیفه باب و اخ دل اجره نکنه اجره سال و سال کرد تحریم و رضم نسته جرافه معلوم شد که کافی چقدر دلیگه اصلا سال و ساله رو میگه رو بخواده حجور رو اما رفت رو میگه ندار اما سال و ساله برداشت رو تبدیل کرده برد این زرافت هایی در امامینه اما چون رحصا ما بحثت خارجی فیلی بیدیم اما اینقدر این از این خواب ما زحمت کشیده هیچه این زحمت ها تلف بشه و از نه روید من کار ندم اشتهادات خودشون اولا این طریقه رو نیست اما این ذرافت رو میخواد بیدیم اجرت حرامه اما رزق اشتال نداره اما سال و سال اجرت برداری و اشکال اما تو مکاسه آن شیخ ارتضاق اشکال نداره اجرت اشکال داره بعشر این چیزی ارزش دارن انابین ابواب در مثل کافی در مثل فرید ما ارزش علمی دارن هاااااا از روایت هم نلاحت داشتن نمی شو نزارم الان با. کلیلی روایت عبد الله بن اسود رو داره, داره. همینجور من کلیلی هم همینجور ولی فقط ها صاحب مسائل صاحب مسائل اینجا ده یه خودی از سلطان قضا اریاصا مثلا میگه اوکی یه ارزش داره چرا؟ چه عذر کردی کل اینی بخواست بگه نهجار رزق آمده این رزق همین اوجه خیلی زرافت کاری روایت یکیه خب دقیق بکنی یه اخوزامن از سلطان علاب قضا از رزق سال و سال دیکن توش رزق آمده بگیم تحریم و رزق کل این بگه سریعه توش رزق آمده اما یه مراد اوجهده رزق نیست به درمی روایتی که اکتظار آزی جایزه پس این زیر. این نقطه است نقطه سنجی لطافت بحث دقت این اختداق می‌کنه که عناوین ابواب این کتب دره انصافاً کتاب و عناوین ابوابش خیلی ارزش نداره یعنی ارزش نداره به این معنی که کلمات عنوانا عامه ارزشی که در تهذیب هست اینه در کتاب تهذیب اینه خیلی از روایات و ذیل مسائل فرعی چون تنزیب شرح استفساره شرح متن مبانی بکارونده مضیده تحلیل روايات رو در مسائل فقهی آورده این خیلی این جذابی بوده و تحلیل اضافات داره زیادات داره هم داشتن من نیست زیادات تحلیل به علاوه حجت علوی با متن کتاب فرض اضافه کرده زیادات اونها از زمانی بعد اضافه کرد تحلیل بحثی من محامل بحثی بشم ذهن من تحلیل خوبی داره اما فقیل باب ده ببین همینجا همین روایت واحده کتاب کافی اینطور عنوان نوانه بابشه ببینید هر خیزه در عجرته ور حب دو تا که هزه ار حب یعنی پول بیدیدی یاد متصدیر قضا میشین عجرته اما رشای در حب نه به فقط رشوه ای در عجرته در کتاب فقیه تح... اینطور آمده شراحت و اخذ رفق قرار قضاها همی <عص> روی تو واحده از هستا خیلی دیده مرحوم شیخ فقید برموم شیخ در فقیل. این اگر اناوین باب من نگفتم، این به چاپت شما روشن نرود نه نرشتن چاپ برای رو مرحوم این اناوین ارواب روشن ندرشت این کارم نکرده متأسفانه اونجا بین کارم یعنی این ظرافت کاره این ها هست از چه سال و ساله به نظردن براشوی خواهر فقیه یا مرمون کلیلی نیست اما هر حرسه فقیه هست ببینید یه رواهت واحده خوشنش دو خود پیشم رزق آمده سال و سال بیه تحریم و رزق این رواهت تحریق هست کلیلی گفته ار اجره این ریض داری جنه اجره و ظاهرش هم حرمت گیرد چون بقید ن صادوق شو گفته, ای نمیشه یعنی یعنی یعنی یعنی خود گفته این نمیشه قاضی عزب اسو ياخدو رفت ولی که ما فرض داریم داراکت صبح ولی که اوسه صادوق میگه یعنی کراهت داره از طرف کراهت صادوق نمیگه کراهت مستقل است یا هم از هست نفس یعنی این ای که در بعضی موارد صبح کراهت داره چرا اصطلاح شده چرا آمده؟ اصلا داریم ما اصلا تصریح داریم در کتاب نهایی ابن حشی ظاهرا خوندم یه بار دیگه برمیگردم يغال مال و فلانه سختون ای لا شيء. من, من لا شيء من استهلكه کرد و دمهو اي لا شیع من سفكه و من السح سح با حوال و سخت اله حرام و دیلای حبل و تسبب لانهو یفحت و ریر دو فلکلام اینا های نفسیر در تفهمه ریر دو فلکلام علال الحرام مردتن و علال محبوخ اخرام و علیه صدر لالیه بلخرام یک حدیث واحد صدوق ازش کراحت سهمیده شیخ کولینی ازش حرمت سهمیده حمله بردرت درده ساهر و ساهل فهمو ظاهرش از کرده و حربت فضلی حمله بردرت کرده السلام علیه و سلم. اگر باید کار کرد، واسلا آی و ادب داره. که باید است، نگله نیست